عرض شد قبلا بر این که ما به عنوان اصحاب رسول الله صلی الله علیه آله بگیم هر کسی که از اصحاب بره این جزب مردان نیک عالمه و هر کاری که میکنه مورد رضای خدای تعالی است نه این رو دلیلی نداشتیم و این بحث رو قبلا کردیم و بلکه گفتیم از آیات شریفه قرآن و از روایات استفاده میشه که اصحاب رسول الله هم اده زیادیشون منافق بودن ادهشون فاسق و فاجر بودن اده پیغمبر رو عذیت میکردن اده پیغمبر رو ازمیشاد به اینکه ملامت و تعییر میکردن اده میگفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا و امثال ذالک از آیات و روایاتی که خوندیم بنابراین این چنین نیست که اصحاب رسول الله یه افراد همچی صد درصد خوبی باشن که بگیم هر کرا که اینا تعیین کردن به عنوان خلیفه رسول الله این مرزی خدای تعالی نه این چنین نیست این مطالبی راجه به این جهت گفتیم و آیاتی هم که برای اون جهت استدلال شده بود دیگه تکرارش نمید نتیجتا تا اینجا ما بایستی که خلیفه رسول الله و امام را از چه راهی به دست بیاریم ارز کردیم تعیینش یا با قرآن هست که قرآن تعیین کند یا رسول الله صلی الله علیه و آله خودش از جانب خدای تعالی معین کند یا امام قبلی که پیغمبر تعیین کرده و معصومه امام دوم رو تعیین کند وقتی پیغمبر امیر مامنین رو تعیین کرد به عنوان یک امام معصوم اگر امام معصوم امام بعدی رو تعیین کنه خوبه و یا موجزهی داشته باشه که کاشف این باشه که من از جانب خودم خودم رو کرد ما الان این مطلب رو که حالا اون بحث بعدیش میونه برای بعد ما عرض کردیم بحث امامت در زمان غیبت، اونی که الان صد در صد به در درد ما میخوره ایناست که ما وظائف رو و تکلیفامون رو از کی باید عقص کنیم یکی از منصبهای اساسی امام بود که امام مبین احکام و حافظ مکتب و جلوگیر از اختلاف و جلوگیر از برداشتهای غلطی که از کتاب و سنت میشه و جلوگیر از تعویلات غلطی که روی کتاب و سنت میشه و مفسر و مبین و شارح مطالبی که رسول الله بیان نفرموده است خب حالا ما باید از کی بگیریم وظائف اون رو؟ اون که الان به درد ما میخوره چنان که قبلا نعرض کردم بعضی میگن بحث امامت به درد نمیخوره با چی بحث میکنیم حالا هزار سال پیش امیرالمومنین خلیفه باشه یا عبیبکر عمر به چی درد ما میخوره نه الان از میکنیم بحث امامت همه الان برای ما لازم و هر کسی وزیفش اینکه اینه بفهمه یکی از منصبهای امام اداره کردن و زعامت مسلمینه ولی یکی از منصبهای اساسی امام این است که مبین احکام باشه و شاره احکام باشه و تعویلات رو و توجیهات باطل رو جلوگیری کنه و احکام بیان نشده رو بیان کنه و مجملات قرآن رو تفسیر کنه اینا رو ما از کی باید بگیریم؟ ما الان همین الان ما مواظعمون را از کی باید اخس کنیم به دستور کی باید عمل کنیم و خلاصه قول و فعل و اعتقاد و عمل کی برای ما حجت است و میزان است این امامت الان به درد ما اینجا میخوره خب رسول الله صلی الله علیه و آله که خودش موفق نشد که تمام مطالب دین رو در ذات این مدت کوتاه بیان کنه نه شرایطش جور بود نه وقتش اقتضا داشت نه گرفتاری ها فصفتش میداد نه زفت ده سال هشتات جنگ کرده این فرصت دیگه پیدا نمیکنه. بنابر بنابراین ما باید سی در امورات دینمون اونایش که بیان نشده به کسی مراجعه کنیم به کی باید مراجعه کرد. ما این را الان لازم داریم این بحث اساسی امامت اینه که حافظ مکتب است بحافظ دین است بحافظ قرآن است این رو باید از کی بفرقیم, بفرقیم. خیلی خوب ما این رو میخوایم الان الان اون چرا که عرض میکنم این است که ما همطور که عرض کردیم باید ببینیم خدای تعالی چه شخصی رو برای این کار معین کرد قبلا اگر نظرتون باشه ما صفات امام را که چگونه صفاتی باید داشته باشه اجمالاً عرض کردیم از کردیم از کی باید بگیریم به ما گفتند کونو مع صادقین با راستگوها باشیم صادق رو معنا کردم قبلا شرحشو دادم به ما گفتند دنبال کی بریم افا من یهدی الالحق حقان یتبع ام لا یهدی الا ان یهدا باید هادی به حق باشه دنبال او برید به ما گفتن دنبال کی برین دنبال اون کسی برین که ادعو الالله علی بصیرتن انا و من تبعنی اینا رو همه رو شرحاشو دادیم هرکی یادشی که یادشه هرکی یادش نیست که ایچی شد. اینا رو گفتیم صفات امام را و یه صفت اصلی امامم گفتیم باید معصوم باشه اشتباه و خطا نکنه ما رو تو چاله نندازه خلاصه به تعبیر خودمون حالا یا آدم بدی و گناهکاری باشه که عمدن بیاندازه یا نه آدم صحب و خطاکاری باشه که اشتباهن بیاندازه باید معصوم باشه اینا رو همه رو شرحاش رو دادیم حالا من چجوری آدم رو پیداش کنیم که این صفات رو داشته باشه صادق باشد دلالت علاو بسیرتن بکند هدایت به حق بکند معصوم باشد اینا کجا باید پیداش کنیم اینو یا قرآن باید معرفیش کنه یا رسول الله صلی الله علیه و الان اونی که الان میخوام عرض کنم دو تا حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله میکنم که این تکلیف ما رو فعلا معین میکنه اولا معلوم باشه حدیثی که از رسول الله مربوط به امامت نقل میشه یه دونه خبر فایده نداره یه خبر و دو خبر و سه خبر فایده نداره چون اصول عقاید باید یقینی باشه و خبر واحد دو و سه تا و پنج تا یقین آور نیست برای ما لزومی که بایستی خبرهایی که در مسئله امامته باید به قول ها متواتر باشه یعنی مفید یقین باشه تا بتونم به یه اعتماد کنم بنابراین ما به خبر تمسک میکنیم ولی به خبرهای متواتر باید تمسک کنیم برای اصل امامت خب بعد از اینکه امامت ثابت شد اون وقت خبر صحیح و معتبر هم قبوله و اما اصل امامت باید به خبر متواتر ثابت بشه یکی از خبرهایی که متواتر است که حالا اشارتاً این روایتی است که سنی و شیعه از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کردهاند که پیغمبر فرمود انی تارکون سیک و کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما به بهما لن تزلو ابدا من دو چیز بزرگ در بین شما می گذارم کتاب خدا و اطرت من است که اگر به این دو هم کنید شما گمراه نمی شوید و نبعنیل شاید به این مضمون الخبیر و العلیم خدای تعالی به من خبر داده که این دوتا از هم جدایی ندارن تا قیامت بر من وارد بشوند یعنی قرآن و اطرت کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتون بهما ما لند ابدا، اگه به این دوتا تمسک پیدا کردید گمراه نیستید از این چی معلوم میشه؟ از این معلوم میشه تمسک به قرآن تنها است. تا مادام اینکه به این دو تمسک کنید ان تمسکتون بهما ما و این نهما لنگفترقا جدائی از هم ندارند. اگر به این دو تمسک کنید گمراه نمیشید بنابراین اون بنده خدایی که میگه هسبونا کتاب الله بر طبق این روایت این درست نمیگه قرآن تنها کفایت نمی کند برای هدایت و قرآن تنها مجملات متشابهات ناسخات و منسوخات امثال ذالک داره ما شاء الله و این مبین لازم داره و بدون مبین خودش ما رو نجات دهنده تنها نیست پس بنابراین این این روایت این روایت را سنی و شیعه که حال میکنم از رسول الله صلی علیه و, علی و علی نقل فرمودند و در یه نبوده هم در حال مرز مرگش رسول الله صلی الله علیه و علیه رو فرموده هم در قدیر خم فرموده هم در روز ای که در روز عرفات میخونده این جمله بوده هم نمیدونم سفری از الله بر طائف رفته و بعد از مراجعت از طائف خود خونده و این جمله رو فرموده و خلاصه موارد متعددی در کتب روایات این مطلب شده از رسول رو نه یه موره که یه ای رو حضرت فرموده مکرر این مطلب رو فرموده و در هر کدام از اینها هم بعضیاش یه جملات زیادتری هم داره غیر از این جملهی ای که کردم یه جملات زیادتری هم داره در مرض مرگش رسول الله علی و علیه و آله فرمود به اینکه که وقتی که حجره حضرت پر از اصحاب بود و همه جمع بودند و نشسته بودند حضرت فرمود ایه الناس یوشکو ان اوقبزا قبضن سریعا نزدیک است که من رو قبض روح بشم و خلاصه بمیرم به زودی فینتلقو بیما از بین شما ببرند وقد قدمت الیکم القول معذرتن الیکم من اون چرا که برای شما لازم بوده به عنوان اینکه عذر رو بر شما ببندم راه عذرا را و به تعبیر خودمون حجت رو بر شما تمام کنم بیان کردم و من الان این کلمه رو برای شما میگویم الا انی مخلفون فیلکم کتاب الله و اطرتی اهل بیتی من این دوتا رو در بین شما می گذارم سمع یاد علیین علیه و السلام فرفعه دست علی رو گرفت و بلند کرد فقال هاذا علیون مع القرآن والقرآنو مع لا يفترقان حتی یردا علی الحوض این دوتا از هم این انفکاک ندارن این دوتا از هم این انفکاک ندارن این همونه که ارز کردم در حقیقت بیان اسمت این آقاست زیرا که اگر کسی معصوم نباشد چیزی میگوید یا کاری میکند یا عمدن یا صحبن یا اشتباهن و با قرآن مخالفت پیدا میکنه میگه این دوتا از هم انفکاک ندارند یعنی هرچه او قرآن میگوید ای هم میگوید و میکند و هر عقیده ای که در قرآن ثابت است ای عقید من است و بیان کننده اوست هر عملی که در قرآن واجب است این عمل کننده به او و بیان کننده اوست هر اخلاقی که در قرآن واجب است و لازم است این متصف به اون اخلاق و عمل کننده بر او و مبین اوست بنابر این حقیقت اسمت همینه که اون چرا که میکند و میگوید و عمل میکند و متصف است و معتبر است همه مطابق قران هیچ وقت با هم دیگه جدایی ندارن ولو اشتباهن بنابر این در این چنین برای ما معین میکند این روایتی بود که در مرز مرگ رسول الله صلی الله علیه و و در روایت دیگر از میشورد که این داره به این که ما انتم استکم بهما لن تزلو ابدا و انهما لن يفترقا حتی يردا على ال حوض در روایت دیگر اضافه داره لا تقدموا هما فتهلكوا ولا تقصرو عنهما فتهلكوا از قرآن و اطرت جلو نزنید که هلاک میشید از اونها عقب نمانید با اونا باشید اونا رو رها نکنید که هلاک میشید لا تعلمونهم هم فانهم اعلم منکم به اونها چیز یاد ندین اونا از شما چیز بهتر بلدن این همینه دیگه ما پی چی میخواستیم بگردیم ما اینکه از کی بگیریم دنبال کی بریم قول کی برای ما حجت عمل کی برای ما میزانه این مطلبی است که رسول الله صلی الله علیه و الیہ به ما فرمود این روایت از نظر مفادش و از نظر بقول ها دلالتش که خیلی واضحه ان تمسکتم به ما لان تذلوا لنگ حتی حتى يردوا علی از مشاد به اینکه علی مع القرآن و القرآن مع علی جدائی از هم ندارن اگر از می جلو از اینا بیفتین حلاک میشین عقب بمانین حلاک میشین با اینا باشین بینا با با چیز یاد ندین و شاید این مکرر که عرض کردم رسول الله در مواقع مختلف این مطلب رو بیان کرده این شاید بصور این که بازم غیر از اینا هم بازم داشته باشه جه دیگه این اصل روایت و اما این روایت که عرض کردم باید متواتر باشه این روایت متواتر است از اون متواتر سفته این از میشد که یه وقتی هم اسمش رو بردم این عالم بزرگوار شیعه که عالمی بوده اهل هند اسمش میر حامد حسین بوده این در زمان مثلا شاید 120 23 سال پیش زندگی میکرده زمان مرحوم شیرازی بزرگ بوده یعنی همعصر بودن با هم این بیچاره چقدر زحمت کشیده خدا میدان حالا که اومد پیش این کلمه رو میگه اینقدر وقتش رو صرف برای عرض میشد احیاء کلمه اهل بیت کرده خودش کشته خلاصش به تعبیر من نقل کردند در احوالات او نوش شاید یا نوش یا نتیجهش الان زنده است یه وقتی آمده بود ایران و او برای یکی از آیون نقل میکرد می‌گفتش که جد ما بهش خبر داشت مشغول بود تو اتاق کتابخونش همش مشغول مطالعه بود بعد بهش خبر دادن که این دخترت مریض مرد گفت رحمت الله علیه او من کار لازم تری دارم برید او رو دفنش کنید من احیای حق اهل بیت بکنم کار لازم دارم برین دفنش کنیم اینها خیلی اهتمام میخواد و باز یکی کسی نقل کرد که برای مرحوم میرزای شیرازی نامه نوشته بود از هند که فلان کتاب و من نیستم از این کتاب فلان کتاب رو شما از نجف برای من تهیه کنید و بفرستید و من خودم میدانم که تو کتاب هست ولی وقت اینکه بگردم و این کتابو پیدا کنم و بتوانم مدتی از وقتم رو مصرف کنم برای این کار ندارم شما برام پیدا کنین و بفرزین این جور اشتمام داشت این عالم بزرگوار یک کتاب داره منم که ندارم اون کتاب رو 15 جلد چند جلد اسمش کتاب عبقات الانواره ابلاقه این کتابش اغلبش راجع به این جهته که روایاتی که در باب امیرالمومنین در روایاتی در شأن امیرالمومنین است این از کتابای سنی و شیعه جمع کرد اونجا نوشته کیا این روایت رو نقل کرده شاید یه جلد از این کتاب بزرگا قدبلندا یه جلد ازی از اول تا به آخرش حدیث سقل است که این حدیث سقل رو کیا نقل کرده چقدر این کتاب خونده چقدر زحمت کشیده خدا میدونه تمام این کتاب از اول تا به آخرش این آقای سنی اون عالم سنی اون فلان اون فلان اون فلان, فلان، یک دونه دونه این نکرده. این نقل کرد از شد به او کتاب دیگه مثلا یه جلد کلوفترش شاید حدیث قدیر کسانی که حدیث قدیر رو نقل کرد از ها اینا دیگه این که بنده ازمی کنم والا فهرسواره ولی اگه کسی بخواد تحقیق کنه باید مراجعه کنه. ازمی کنم به اینکه که این نیتار کن فیکوم و کتاب الله و اترتیم این آقای بزرگوار یه جلد کتابش روایت ثقلین یکی این روایت نقل کرده مرحوم شرف الدین در این المراجعات که نوشته برای عالم سنی که نامههایی رد و بدل می شده در اون نوشته که 27 هم او رو دیدم امروز بسته هر از سهابیها، از خاب رسول الله صلی الله عليه و آله، این حدیث رو نقل کردن، میشن نوشتم 27 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله عليه و آله، این حدیث رو نقل کردن، از میشود به اینکه در قایط المرام، این قایط المرام از کتابهای خیلی نفیسه، این قایط المرام همین آقای محدث بهرانی صاحب تفسیر برهانه اینم بیچاره خیلی زحمات کشید المرام اونم در روایات مربوط به امیرالمومنین سلام الله علیه و اهل بیت نوشته مثلا آیات و روایات او اختصاصم ندارم کتاب نفیسی سراغ نوشته مثلا فرضو همه حدیث ثقلین نوشته از طرق شیعه چند تا شروع کرده شیعه اینو اینو اینو اینو این. از سرابه چند اینو اینو این و این, و این, و این و شروع کرده روایات رو نقل کرده آیه مثلا انما ولی و الله چند تا رواید در زیلی از سننی داریم که این آیه در شهنمی رو نمونه چند تا رواید از شیعه داریم و زیاد اتفاق میفته این آیات و روایات طریق سننیاش بیشتر از هاش. این هم زحمت کشته خیلی هم زحمت کشته خدا این متقدمین رو رحمت کنی که کنی ک و این کتاب رو گذاشتن در اختیار ما ما هم که خیلی آقای خوبی هستیم لاشم بالمو خیلی زحمت کشم دیشارا خدا رحمت شد به هر حال این آقای قایت المرام همین محدث بهرانی، این چه حاطه عجیبی داشته این روایات اون وقت در عرض می و از قایت المرام نقل شده که 82 روایت از طرق شیعه سقلن کتاب الله و اطرتیم 39 روایت از طرق آمه نقل میکنه این آقا از می شود به اینکه ولی اون آقای میر حامد حسین که از کردم از, 200 نفر از کتاب دویست نفر از عالم سنی نقل میکنه این روایت رو و از کردم یه جلد کتابش این روایت خلاصه حالا چقدر روایت نقل کرده خدا میدونه دیگه این رو باید مراجعه کرد. از شد به این که این روایت تاست بنابراین این روایت کذایی یکی و دوتا دعتا نیست که بگیم شاید این دروغ باشه اینا رو شیعه ها دروردن نه این حرفا نیست نه اینا نیستش که یه دونه باشه دوتا باشه سه تا باشه ارز کردم اینقدر روایاتش زیاده اون من خدای شاعر که حالا شعرش ولد نیستم یا غیر شعر گفته بود درباره امیرالمومنین چی بگم که دشمنانش برای حسد فضائلش رو مخفی کردن و دوستانش از ترس فضائلش رو مخفی کردند معالک سرتاسر سر عالم پر از فضیلت امیرالمومنین است چی بگم دیگه این همه سنیو کوشش کردند که این روایات در باره همین مونی نظمین بیه برن ولی ایناش مونده حالا چقدر بوده خدا میدونه، ایناش مونده فعلا خیلی خوب پس بنابراین اینگه روایت مثلو از میشد این که این نیتار کنفی کنستقلین کتاب الله و اطرتی اینا از هم جدایی ندارن پس من باید وظیفمو از اینا بگیرم دیگه از شدن این اینکه؟ اینجوری که این روایت میگه و حالا روایت بعد اینم زود اشاره که دیگه نمیکنم خیلی طول بدم اینجوری که این روایت میگه راه منحصر ما اهل آخه آقا یه وقتی شلوک کردن و گفتن به اینکه اون آقایی که رئیس نمیدنم جامعه از هر بود چلتوت اسمش بود آلمی بود خب نسبتانم دلاخره مردانگی کرد یکی سری ازش سآل کرده بود که آیا عمل کردنه؟ به فتاوای علمای شیعه جائزه یا باید فقط عمل کرد به اون چهار تا فتوای سنیا، هنفی و مالکی و شافی و همبلی؟ این در جوابش نوشته که تو کتاب هم هست و چاپ کردن جوابش نوشته که نه عمل کردن به فتاوای شیعه هم است و خلاصه دین در انحصار اون چهار نفر نیست شبیه به این ولی حالا این آقا یه قدم پاش جلو گذاشته امین و بچه هاش هم اورده جزء کار گفته مال اینا هم قبوله ولی اگه واقعش رو بخوان مال اینا فقط و دیگران نیست اگه به اینا تمسک کنید لنتزلو بنابراین نگو که اینم یکی نه این یکی نیست تمام اینه دیگران بی خودم. و روایت دومم که اونم باز شاید یه جلد کتاب رو اشغال کرده از اون کتابای اون آقا مثل اهل بیتی که سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف انها غرق اهل بیت من مثل کشتی نوح اگه کسی سوارشون، سوار این کشتی بشه نجات پیدا میکنه اگه از این تخلف پیدا کنه اگر تخلف کند غرق می شود به آقای دیدم گفته گرچه بره بالای کوه به گست آبی الاجبل نیاسم و نیونال ما کوهی نداریم که حافظ باشه کشتی داریم فقط حافظه. مثل اهل بیتی که سفینه نو یه روایتش ما کردم این مطلب و هم این روایت و هم این روایت, هم این روایت اولی. یه مقدارش رو با سندهای مختلف مرحوم مجلسی در بهار اشاره کرده یه جاش رو بنده ارز میکنم و همونجا که مراجعه بفرمایید وقت گفته مرحوم مجلسی این رو در صفحه 104 جلد 23 چاپ جدید اونجا مراجعه بفرمایید نوشته حدیث منزلت و حدیث سفینه و شاید حدیث منزلت که حالا عرض می‌کنیم حدیث سفینه و حدیث منزلت و حدیث سقلنگ رو یه بابی براش درست کرده و روایاتی از سنی و شیعه نقل کرده و اونجا اشاره کرده که ما در کتاب فلان در جلد فلان جلد فلان روایات دیگری هم ذکر کردیم که از یه مقداری از سندهای روایات سنی‌ها رو مرحوم مجلسی جمع‌آوری کرده. ابی آمد در وارد مسجد الحرام شد جلو مسلمونا و هاجیا ها غیر هاجیا ها اومد وارد مسجد الحرام شد حلقه در خانه کعبه رو گرفت و صدا زد ایو الناس من عرفنی فقط عرفنی هرکی کی مرا میشناسه که میشناسه هر کی نمیشناسه انه انا جنده ابن جناده عبیزر الغفاری القفاری اویزر است اسمش جنده بوده من جنده ابن جناده هستم اعوی ذر غفاری هستم سمعت رسول الله صلی علی الله علیه و آله و سلم الله صلی و سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله. انما مثل اهل بیتی فیکن که سفینه من رکبه ها نجا و من تخلف عنها غرق و مسلو مسلو باب خطه من دخلهو نجا و من لم ید خلو هلک خطه باب حتح و خطه و حطه بنی اسرائیل تو قرآن داره نمیدونم من دهاله براجعه کنید به تفسیر که دری بوده که وارد این در بشید که تا گناهان شما بریزه اهل بیت ما هم پیغمبر فرموده اهل بیت من هم مانند همون است که خدا تو قرآن فرمد ودخل البابه سجدن نمیدونم و چی چی و حته و قولو حته و امثال زالک اونجور و اینی النبی نبیکم صلی الله علیه و علیه یقول اینی ترکتو فیکم امرین لن تزلو ما تمسکتون به ما کتاب الله و, و اهل بیتی فلم ما قد این ربایت رو گفت تموم شد فلما ما قدم المدینه وقتی آمد مدینه عویزر آمد مدینه به اصحیلیه عثمان عثمان فرستاد عقب عویزر و گفت ما حملک علام ماسمه چی تو وادار کرد که این مطالب رو نقل کردی و این حدیث رو نقل کردی قال اهدون اهد الی رسول الله صلی اللہ علیه و, علی و, علی و عمرانی به پیغمبر از من عهد و پیمان گرفته و به من امر کرده که اینا رو به مردم برسونم. قالم من یاشهد بذلك کی شاهده بر این مطلبه که پیغمبر با تو این عهد و پیمان رو گرفته و به تو امر کرده؟ فقام علی علیه السلام و مقداد، علی و مقداد بلند شدند و شهادت دادند که ما شهادت میدیم که پیغمبر به این آقا این چنین امر و دستوری داده. ثم من سرفو یمشون سلاسته هم و سنفری باید شدن رفتن بیرون از مجلس یعنی عویزر و امیر المؤمنین و مقداد. سنفری رفتن بیرون فقال عثمان انهازا و صاحبه یحسبون انهم فیشه ای و دورفر رفیقش خیال میکنن به تعبیر من چیزی هستن بلوست. کاری نداریم به زیلش. نتیجه نتیجتاً اون که ما از کجا باید بگیریم و از کی باید بگیریم از رسول الله بپرس که از کی باید بگیریم بنابراین آیا من دنبال ابی حنیفه و شافعی و همبلی برم معذورم در پیشگاه خدای تعالی نه آیا من اقاعدم رو از اشعری و معتزلی بگیرم اشعری و معتزله بگیرم معذورم در پیشگاه خدای تعالی نه پس بنابراین من نه اقاعدم رو نه اعمالم رو نه اخلاقم رو اهدی رو حق ندارم پیشوای خودم قرار بدم رسول الله فرموده است که اهل بیت من کشتی نجاتن و اهل بیت من از قرآن جدایی ندارن پس من وظیفم این است که به اینها رو کنم همینی که عرض کردمم باز که یک جلدش از می شود. شاید همون آقای میر حامد حسین از نوت نفر از سنی نقل میکنه. کنه المرام هم 32 تا و 39 تا روایت شیعه و یازده تا روایت سنی نقل میکنه. و اینا رو باید مراجعه کرد حالا بنده یه مقداری کتاباشون ندارم یه مقداری هم ندارم یه مقداری هم شما حال این نشون ندارید ولی علا کل حال اینا کتاب هایی که در این بابت نوشته شده همین عبقات القدیر اینا زحمت کشتن اینا رو جمعوری کردن مراجعه کنه کسی اهل تحقیقه صلی اللہ